دختر پادشاهی یونان. در سالهای دور پادشاهی تو ایرلند زندگی میکرد سه پسر داشت. یه روز پسر بزرگتر پیش پدرش اومد و بهش گفت سرزمین ما کچیکتر از اونیه که همه بتونن تو اون زندگی کنن و از اون درخواست کرد تا دستور بده یه کیکی براش بپزن. پسر قصد داشت به سفر بره و در جای دیگه ای هرچی دورتر بهتر زندگی تازه ای برا خودش و پا کنه. پدر صبح روز بعد اونو احضار کرد و گفت که دو کیک براش فراهم کرده. یک کیک کوچیک با دعای خیر و یک کیک بزرگتر با نفرین. پسر حق داشت یکی از اونها رو انتخاب کنه. اون گفت که چون راه دوری پیش رو داره باید آزوغه زیادی به همراهش داشته باشه و به خاطر همین کیک بزرگتر و نفرین پدر رو انتخاب کرد. بنابراین کیک بزرگتر و برداشت و صبح روز بعد اول وقت از خواب بیدار شد دست و صورتشو شست و راه افتاد مسیری که انتخاب کرد جنوب شرقی بود و از خدا خواست که اونو به راه صحیح هدایت کنه رفت و رفت و رفت تا اینکه شب شد تازه این موقع بود که فهمید چقدر گرسنه نشه تو چمنزار برآمدگی کوچیکی دید و روی اون نشست تا کیکی رو که همراش آورده سر فرصت بخوره اما هنوز چند لغمه بیشتر نخورده بود که سینه سرخ زیبایی در برابرش ظاهر شد و گفت شاهزاده ایرلندی آیا تکه کوچیکی یا حتی ذره از این کیکو به من میدی تا با اون بچه های گرست سیر کنم؟ شاهزاده جواب داد راستش رو به نه؟ این قضا شکم خودم را هم سیر نمی کنه و تازه نمیدونم چند روز دیگه تو راه خواهم بود هنوز حرفشو تموم نکرده بود که زمین زیر پاش دهن باز کرد و اونو رو بلعید طوری که انگار هیچ کس روی اون تپه کوچیک نبود روزها گذشت و پادشاه هیچ خبر یا نشانی از پدرش نداشت وقتی این انتظار به یک سال و یک روز رسید پسر دوم پادشاه پیش پدرش رفت و گفت باید بره تا بلکه خبری یا ردی از برادرش پیدا کنه و تنها چیزی که خواست آزوغه راه بود. پادشاه همون دو کیک رو که به پسر بزرگش پیشنهاد داده بود به این یکی هم داد و پسر دوم هم کیک بزرگتر و نفرین پدر رو انتخاب کرد. اون وقت قدم به جاده گذاشت و پای پیاده به راه افتاد. رفت و رفت و رفت تا اینکه به همون تپه کوچیک در میان علفزار رسید. که برادرش رو اون نشسته بود تا غذاشو بخوره. اونم کیکشو در آورد تا بخوره که سینه سرخ در برابرش ظاهر شد و شاهزاده دوم هم دست رد به سینه اون زد و به همون بلایی دوچار شد که برادرش دوچار شده بود. زمین زیر پاش دهن باز کرد و اونو بلعید مدتی به همین ترتیب سپری شد تا اینکه وقتی از زمان رفتن او هم یک سال و یک روز گذشت، پسر سوم پادشاه پیش پدرش رفت و گفت که از زمان رفتن برادر بزرگتر دو سال و از زمان رفتن برادر دوم یه سال و یه روز گذشته و تا خبری از اونا پیدا نکنه آروم و قرار نداره. بنابراین درخواست کرد که کیکی هم برای اون بپزه و اعلام کرد که فردا میره تا شاید خبری از اونا بیاره. این بار هم پادشاه دو کیک آماده یک کیک کوچیک به همراه دعای خیر و یک کیک بزرگ با نفرین اون وقت پسر رو صدا کرد و گفت که یکی رو انتخاب کنه پسر سوم کیک کوچیک و دعای خیر پدر رو انتخاب کرد و به راه افتاد او هم به همون راهی رفت که دو برادرش رفته بودند اونقدر رفت و رفت تا اینکه شب شد چون گرسنه شده بود روی همون تپه کوچیک نشست که دو برادرش نشسته بودن تازه شروع به خوردن کرده بود که سین سرخ کوچیک در برابرش ظاهر شد و گفت شاهزاده ایرلندی آیا تیکه کوچیکی یا حتی ذره ای از این کیک رو به من میدی تا با اون بچه های گروس و سیر کنم؟ شاهزاده گفت چرا که نه؟ بیا هر چقدر که میخوای بردار؟ حتی بیشتر از اون مقداری که میتونی با خودت ببری بیا هرقدر دوست داری بردار سینه سرخ کوچیک گفت: آه شاهزاده ایرلندی، میدونم عازم کجا هستی و اگه برادرانت کار رو کرده بودن، به مصیبتی که امروز تو اون گرفتارن دوچار نمی شدن اونا در دل همین زمین مدفون شدن و دیگه لازم نیست دنبالشون بگردی. شاهزاده ایرلندی، شب رو میخوای کجا بمونی؟ شاهزاده پاسخ داد: نمیدونم، هیچ جایی به ذهنم نمیرسه که شب و اونجا بمونم. سینه سرخ گفت: به تو میگم کجا بری؟ در اون گوشه جنگل یه کاهن پیر زندگی میکنه پیش اون برو، اون امشب به تو پناه میده. بعد از اینکه شامت رو خوردی از تو میپرسه کهعازم کجایی؟ بگو که نمیدونی و پیش اون رفتی که به تو پندی بده. شاهزاده از سینه سرخ هزار بار تشکر کرد و یه راست به در خونه یه کاهن پیر رفت و داخل شد. کاهن پیر از او از پسر پادشاه ایرلند به گرمی استقبال کرد و گفت، که هرچی در خونه فقیرانش داره در اختیار اونه مدتی بعد وقتی شامشون رو خوردن درست همونطور که سینه سرخ گفته بود کاهن پیر از اون پرسید که آزم کدوم گوشه دنیاست شاهزاده گفت اصلا نمیدونم کجا باید برم و اومدم که پندی به من بدی کاهن پیر پرسید جنگجوی خوبی هستی یا نه؟ شاهزاده جواب داد تا حالا هرگز فرصتی برام پیش نیومده که قدرتم نشون بدم. اما فکر میکنم تو میدون مبارزه نتونن به آسونی با من به جنگن. کاهن گفت، خوبه، صبح زود از خواب بیدار شو، اونجا اون پایین، آبگیری زیره درخت پیدا میکنی، بالای درخت برو و خودتو مخفی کن. فردا دختر پادشاه یونان به همراه دوازده ندیمش به اونجا میاد. وقتی لباسهاش رو در آورد و مشغول شنا شد، لباسهاشون رو و به بالای درخت ببر. اونا التماس میکنن که لباس ها رو پس بدی. بگو پس نمیدم. بعد میگن که حاضرن در برابر لباس ها هرچی بخوای به تو بدن. جواب بده که چیز زیادی از اونها نمیخوای و تنها چیزی که میخوای اردک کوچیک و لنگیه که پشت اونا در آبگیر شنا میکنه. اونا میگن که اردک کوچیک و لنگ به درد تو نمیخوره و غیر از اون هرچی بخوای به تو میدن. به اونا بگو که غیر از اون اردک کوچیک و لنگ هیچ چیز دیگه ای رو قبول نمی کنی بالاخره وقتی با اصرار زیاد تونستی اردک رو بگیری، به نصیحتش گوش کن و هر کاری که میگه انجام بده. این همون پندیه که باید به تو میدادم. شاهزاده هر کاری رو که کاهین گفته بود انجام داد و اردک کوچیک و لنگ را در برابر لباس ها گرفت و با خودش برد. زمان زیادی نگذشت که اردک به زیباترین دختری که نور خورشید بر تابیده تبدیل شد. اون دو در همون نگاه اول عاشق همدیگه شدن. دختر به شاهزاده گفت که او هم دختر پادشاه یونانه و ناخاهریش همون دختری که دیروز دیده بود به کمک جادو اونو به اردک تبدیل کرده تا از سر راه برش داره. دختر گفت که پدرش پادشاه یونان هم اونو ترد کرده بعد از شاهزاده پرسید که آیا جنگجوی خوبیه یا نه و بعد ادامه داد اگه میخوایی من رو به همسریت انتخاب کنی باید برای باطل کردن تلسمی که من به اون دچار شدم شجاعانه و با تمام نیرو به جنگی پسر گفت تا حالا فرصتی پیش نیومده تا مهارتم رو تو جنگ نشون بدم اما همینجا قول شرف میدم که هر کاری از دستم بر بیاد برای آزاد شدن تو از شر تلسم اونا انجام بدم دختر گفت خب پدرم به یک گاوچران نیاز داره همین حالا پیش اون برو و بگو که گاوچران هستی و دنبال کار میگردی با تو کنار میاد چون بد جوری به گاوچران نیاز داره اما از اون اجازه بگیر که در اتاق باد بخوابی. با تقاضای تو به راحتی موافقت نمیشه چون هفت سال از زمانی که من تلس شدم و از پنجره اتاق نزدیکترین پنجره به حیات به بیرون پرتاب شدم میگذره و از اون موقع تا حالا در اتاق باز نشده اما بالاخره با درخواست تو موافقت میکنه و بعد از تو میخواد که شام رو کنار اون بخوری اما به اون بگو که اصلا میلی به غذا نداری در جنگل مقدار زیادی میوه وحشی خوردی و اکنون به خواب بیش از غذا نیاز داری اون وقت از اون کلید اتاق باد رو درخواست کن تا بتونی تو اون بخوابی کلید رو بهت میده در اتاق رو باز کن و داخل شو من اونجا منتظرتم و همین طور هم شد همه چیز همونطور شد که اون گفته بود به محض اینکه در رو باز کرد دختر مقابلش ظاهر شد در اتاق آتیش خوب و پر نوری روشن بود آتیشی بدون دود بدون خاکستر و بدون ذرهای لرزش اتاق با ظرفهای طلا و نقره از این شده بود و منتخبی از بهترین غذاهای اون زمان مهیا بود شب رو به سه قسمت تقسیم کردند. در وقت اول خوردند و نوشیدند وقت دوم رو به نواختن موسیقی گذروندند و در وقت سوم به قصه گوش سپردند. بعد شاهزاده خانوم در یک چشم به هم زدن ناپدید شد و شاهزاده تا صبح به خواب عمیق و آرامی فرو رفت. پسر صبح زود بیدار شد و رو که شاهزاده خانوم آماده کرده بود خورد. شاهزاده خانوم پرسید که آیا برای بردن گاوها به چرا آماده است یا نه؟ پسر گفت که کاملا آماده است. دختر گفت امروز جنگ سختی پیش رو داری به محض اینکه گاوها رو بیرون ببری همگی با شتاب به یک سمت می‌دوانند به سمت سرزمین ها که در همسایگی ما زندگی می‌کنند چیزی از ورود گاوها به اون سرزمین نمیگذره که قول سه سر سه قوز سه گردن به تو حمله میکنه خشمش لحظه به لحظه بیشتر میشه و از تو میپرسه که برای جنگ آماده هستی و برای جنگ چه سلاحی را انتخاب میکنی یا اصلاً چه نوع مبارزه ای را پیشنهاد میدی؟ به اون بگو که مسابقه خشن و وحشیانه کشتی رو انتخاب میکنی. در طول مسابقه فقط یه جمله بهت میگه. اگه من هم عاشق زنی به اون زیبایی بودم با همین قدرت و خشونت کشتی میگرفتم؟ به اون جواب بده که مادر خودش زیباتر از معشوق توه اگه جواب دیگه ای بدی بر تو برتری پیدا میکنه و سرت رو از تنت جدا میکنه. شاهزاده شاهزاد ها رو حرکت داد و خودش بی سر و صدا پشت سرشون به راه افتاد گاف ها جلوتر از اون می رفتن و تا رسیدن به سرزمین قول ها یک لحظه توقف نکردن چیزی از ورودشون به اون سرزمین نگذشته بود که شاهزاده صدای شکستن و خرد شدن شاخه ها رو شنید. این قول سه سر سه قوز سه گردن بود که هرچی رو در جنگل مقابلش قرار می گرفت نابود می کرد. قول گفت پیف پیف پیف بوی خونه یک ایرلندی در سرزمینی که به اون تعلق نداره به دماغم میخوره. اگه حق و باطلی وجود داره به اون قسم میخورم که سرش رو در ازای این کار از دست خواهد داد. شاهزاده جواب داد لعنت به تو ای قول بد ترکیب فکر نکن اومدم احوالت رو بپرسم. میخوام دمار از روزگار در بیارم قول گفت خوبه پسر پادشاه چطور دوست داری به جنگی؟ کشتی با تمام نیرو رو انتخاب میکنی یا مبارزه با شمشیر را؟ شاهزاده گفت من مسابقه کشتی رو انتخاب میکنم چون اونو با همسن و سالان درباریم خیلی تمرین کردم و لحظه بعد مثل دو جنجوی تنومند یا دو گاوه کوهی به جان هم افتادند زمین سفت رو نرم کردند و زمین نرم رو سفت و از صخره سخت آب گوارا و شیرین در آوردند هر ساعتی که میگذشت قول می گفت که اگه او هم عاشق زنی به اون زیبایی بود حتما همین غرض مقاومت می کرد و شاهزاده هر بار جواب می داد که مادر خودش از اون زیباتره. اما اما هرچه زمان جلوتر می پیروزی قول محتمل به نظر می رسید. از این رو سین سرخ کوچیک در برابر شاهزاده ظاهر شد و گفت آه ای شاهزاده ایرلندی گرچه هیچ یار نداری و کاملا تنهایی اما اگه تمام نیروت رو جمع کنی و اون موجود زشت و ترکیب رو زمین بزنی چیزی نمیگذره که مبارزه رو میبری شاهزاده به محض شنیدن این کلمات تمام زورش رو جمع کرد و به قول حمله ور شد و گردن اونو چنون پیچوند که قول روی زانوهاش نشست با یک فشار دیگه قول نقش زمین شد و در حرکت سوم پشتش به زمین خورد. شاهزاده گفت سرحات مال منه. قول به حرف اومد و گفت: سرهام رو از تن جدا نکن. قول میدم تا روز مرگم نیمی از سرزمینم و از آن روز به بعد تمام سرزمینم و به تو بدم و علاوه بر آن اسای جادوگریم رو هم تقدیمت میکنم. شاهزاده گفت: کجاست؟ قول گفت؟ روی صخره ای که اونجاست. شاهزاده گفت: هم اونا رو از تو می و هم سرحات رو. و شمشیرش رو کشید و سه سر قول رو از تن جدا کرد بعد چوبی برداشت و اون رو از سرها گذروند و به دوش انداخت سپس گافهاش رو جمع کرد و اونا رو به سوی خونه برد پادشاه یونان که در انتظار گافچران و بازگشت گله بود کنیزی رو فرستاد تا خبری از اون بیاره کنیز برگشت و اعلام کرد که هیچ اثری از او و گافها ندیده پادشاه گفت گافچران نمیاد و دیگه هرگز اونو رو نخواهی دید. مدتی گذشت و پادشاه بار دیگه کنیز رو فرستاد تا خبری بیاره این بار پس از زمانی کوتاه دختر به درون قصر برگشت و گفت سرورم اومد گافچرون داره میاد و سرهای قول رو هم به دوش داره پادشاه از جا پرید و سه قدم از حیات قصر بیرون رفت تا به گافچران خوش خوشامد بگه اونجا دستهاش رو دور گردن شاهزاده انداخت و اونو غرق بوسه و عشق کرد و بعد با دستمالهایی از ابریشم و حریر خوشکش کرد بعد از اون خواست که داخل بشه و شامش رو بخوره و گفت که تا حالا سابقه نداشته که یک گاف به سرزمین قولها بره و زنده برگرده. شهزادی ایرلندی گفت من اصلا گرسنه نیستم. اونقدر میوه وحشی تو جنگل بود که تا جا داشتم از اونا خوردم. الان بیش از اینکه که گرسنه باشم خستم. بنابراین اگه کلیدو به من بدین میرم که بخوابم. و کلیدو گرفت و در رو باز کرد. باز هم دوشیزه زیبا در اتاق بود و آتش خوب و فروزان آنجا می سخت. دوشیزه به سوی اون اومد و بر زخمهاش مرهم گذاشت و شاهزاده مثل صبح که خونه رو ترک می کرد سالم و حال شد. اون دو اون شب رو نیز مثل شب گذشته به خوشی و شادمانی گذاروندن، شاهزاده صبح زود از خواب برخاست و وقتی آماده شد تا کار روزانه خودش را رو شروع کنه، دختر پادشاه یونان به اون گفت شک ندارم که دیروز خیلی خوب جنگیدی، اما جنگ دیروز به هیچ وجه در حد جنگی که امروز پیش داری نیست و چون نمیخوام چیزی ما رو از هم جدا کنه، این حلقه رو به تو میدم تا دفعه بعد که میبینمت از اون به خوبی نگهداری کن قولی که دیروز با اون کشتی گرفتی جوانتر از قولی بود که امروز میبینی در طول مبارزه حرفی از اون نمیشنوی فقط میگه که اگه من هم عاشق چنین زن زیبایی بودم با همین شجاعت مبارزه میکردم در جواب باید بگی که مادرش از اون دختر زیباتره چون در غیر این صورت فوراً سر از جدا میکنه شاهزاده گفت نگران نباش نصیحتت رو فراموش نمی کنم. اون وقت دنبال گاوها به راه افتاد و تا رسیدن به سرزمین قولها توقف نکرد مدت زیادی از رسیدنش به اون سرزمین نگذشته بود که صدای شکستن و خرد شدن شاخه ها رو شنید قول امروز در برابر قول دیروز سر و صدا تولید می کرد و مستقیما به طرف شاهزاده میومد. قول گفت لعنت به تو تو دیروز برادر کوچیکم رو کشتی اون بیچاره فقط 300 سال سن داشت چون به چوب گهوارهش احتیاج داشتیم اونو زود از گهواره درآوردیم. اما من امروز به خاطر کشتن اون دمار از روزگار در میارم اون وقت مبارزه رو آغاز کردن جنگ اون روز حتی از مبارزه روز قبل هم سختتر و شدیدتر بود در پایان روز چیزی نمونده بود که قول پیروز بشه اما سرخ کوچیک بار دیگه اومد و به شاهزاده گفت که همه نیروش رو جمع کنه و الا در جنگ شکست میخوره. شاهزاده با شنیدن این حرف تمام زورش رو به کار گرفت و بر قول غلبه کرد. اون وقت سرهای قول رو برید و اونا رو با خود به قصر پادشاه یونان برد. پادشاه برای خوشامدگویی و پیشواز از اون شش قدم از حیات بیرون رفت و بار دیگه از او دعوت کرد تا شام مهمانش باشه. اما شاهزاده نپذیرفت. و همان بهانه دیشب را آورد بعد کلید اتاق باد را از پادشاه گرفت و در اونو باز کرد و داخل شد. شاهزاده خاوم باز همونجا منتظرش بود و مثل شب پیش بر زخمهاش مرهم گذاشت. اون شب رو هم یا در حقیقت بخشی از اون رو به خوشی و عشق گذوندن. صبح روز بعد وقتی شاهزاده آماده رفتن شد دختر بهش گفت: نبرد دو روز گذشته در مقایسه با مبارزه ای که اون روز پیش رو داره هیچ بودن. و از اون خواست که نصیحتش را هرگز فراموش نکنه یعنی وقتی که قول گفت اگه او هم عاشق دختری به این زیبایی بود به همین خوبی می جنگید باید جواب بده که مادرش از اون دختر زیباتره شاهزاده خانم به اون سفارش کرد که هرچی که گفته آویزه گوشش کنه و خیالش راحت باشه اون وقت شاهزاده به دنبال گاوها رفت وقتی به مقصد رسید قول نه سر نه گوز نه گردن به جنگش اومد اون دو تا شب شجاعانه مبارزه کردند تا اینکه سینه سرخ اومد و شاهزاده رو واداشت که تمام قدرتش رو یه جا جمع کنه و خلاصه اینکه باز هم شاهزاده غول پیروز شد و نه سرش را برید و پیش پادشاه یونان برد پادشاه این بار برای دیدن اون نه قدم از حیات بیرون اومد. اون شب استقبال از او دو برابر گرمتر و صمیمیتر از شب‌های پیش بود و پادشاه باز هم اصرار داشت که شام رو با هم میل کنند اما شاهزاده دوباره همان بحانه های قبل رو آورد و از خوردن شام امتناع کرد. سپس کلید اتاق باد رو از پادشاه گرفت و در رو باز کرد و داخل شد. دوشیزه زیبا این بار هم درون اتاق منتظرش بود و مثل شبهای پیش روی زخمهاش مرهم گذاشت. دوشیزه صبح زود شاهزاده رو بیدار کرد و بهش گفت شک ندارم که در سه روز گذشته شجاعت زیادی نشون دادی اما مبارزه با گولها در مقایسه با جنگی که امروز پیش رو داری هیچه امروز جادوگر وحشی مادر گولها رو در روی تو قرار میگیره. اون هفت سال رو در کوره آهنگری صرف تیز کردن ناخونهاش کرده اگه ناخوناش به تو برسه گوشتت رو پاره می‌کنه و خونت رو می ریزه. اون دائمان به تو میگه اگه خوب میجنگی جای تعجب نیست چون عاشق دختر زیبایی هستی تو هم به اون جواب بده که خودش زیباتر از اون دختره چون اگه چیز دیگه ای بگی بر تو پیروز میشه و سرت رو در لحظه جدا میکنه شاهزاده گفت نصیحتت رو آویزه گوش میکنم و اونگاه به دنبال گاو ها راهی سرزمین قول ها شد هنوز کاملا از مرز رد نشده بود که صدایی رعداسا شنید. صدایی چنان بلند که فکر کرد بر اثر اون زمین زیر پاش به لرزه افتاد. درست در همین موقع جادوگر وحشی رو دید که به طرفش میاد. جادوگر پشت سرش دندونی داشت که از اون به عنوان تکیهگاه استفاده میکرد و هفت جریب ریش به دنبالش روی زمین کشیده میشد و زمین را شخ میزد و صاف میکرد. جادوگر فریاد زد، لعنت به تو ای شاهزاده ای ایرلندی و بهش نزدیک شد تو به این سرزمین حمله کردی و در سه روز گذشته سه فرزند کوچیک منو کشتی اگه کم بود چوب نداشتیم فرزند بزرگم هنوز تو گهواره بود چون فقط 900 سال سن داشت به خاطر کاری که با اونا کردی امروز دمار از روزگار در میارم شاهزاده گفت لعنت به تو ای جادوگر پیر فکر نکن برای دلجویی از تو اومدم اومدم استخوناتو خورد کنم. جادوگر پوزخندی شیطانی زد و از شاهزاده پرسید کدوم و انتخاب میکنی؟ کشتی با دست خالی یا مبارزه با شمشیر؟ شاهزاده پاسخ داد من کشتی رو انتخاب میکنم. جادوگر گفت پس فرصتی به تو نمیدم. و بعد به هوا پرید تا روی سر شاهزاده فرود بیاد، اگه شاهزاده خودش رو زیر شکم یک گاو شیرده ننداخته بود جادوگر با ناخونهای بلندش اون رو تیکه تیکه کرده بود شاهزاده بلند شد و کوشید از خودش در برابر اون دفاع کنه جادوگر دقیقه به دقیقه تکرار می کرد که اگه شاهزاده به این خوبی می جنگه جای تعجب نیست چون عاشق دختر زیباییه و شاهزاده هر بار جواب میداد که خودش زیباتره. عاقبت جادوگر اونقدر شاهزاده رو آزار داد که اون صبر و شکی با ایش رو از دست داد و خون اصلیش جوشید و گفت لعنت به تو ای جادوگر زشت او زیباتر از توه هنوز حرفش رو کاملا تموم نکرده بود که جادوگر به هوا جهید و روی سر شاهزاده فرود اومد و نیمی از بدنش رو درید در جهش دوم چنگالهاش اونچنان در تن شاهزاده فرو رفت که چیزی نمونده بود تمام رو از, از گوشت و پوست جدا کنه در این موقع سینه سرخ کوچیک اومد و به شاهزاده گفت أفسوس ای شاهزاده ای ایرلندی چند گالهای جادوگر تو رو تکه تکه کرده اما حالا به حرفم گوش کن و هر چی میگم انجام بده جادوگر هفت شنل شیشه‌ای جادویی به دور خودش داره که اگه بتونی لگد محکمی به اون بزنی طوری که های شیشه‌ای بشکنه قدرتش به اندازه یک زن عادی میشه شاهزاده لگد محکمی به جادوگر زد و یکی از شنل های شیشه ای رو شکست با لگد دوم شنل بعدی شکست و به همین ترتیب هر هفت شیشه خورد شد جادوگر نقش زمین شد و درست همونطور که سینه سرخ گفته بود حالا فقط قدرت زن عادی رو داشت شاهزاده گفت سرت به من تعلق داره جادوگر گفت سرم رو نبر شاهزاده نیمی از سرزمینم رو تا روز مرگم و از اون به بعد تمام اون رو به علاوه توسن سیاه و تیستک و عصای جادویم رو که اونجا روی سخر قرار داره بهت میدم. شاهزاده گفت من همه اینها رو به علاوه سرت میخوام و سرستنش جدا کرد. اون وقت چوبی رو از میان گونه های اون عبور داد و اون روی شونه های خودش انداخت و به همراه گاف ها به خونه برگشت. وقتی به حیات قصر رسید، پادشاه برای خوشامدگویی به او مسافت زیادی رو طی کرده بود. پادشاه از اینکه برای همیشه از شر قولها و مادرشون جادوگر وحشی خلاص شده بود، اونقدر خوشحال بود که در پوست خودش نمی گنجید. اون وقت شاهزاده رو با خودش به حیات گچکاری شده و زیبا در ای با شکوه برد که نه داخل اون ستونی دیده میشد و نه خارجش. اون قلعه فقط بر روی یک ستون قرار گرفته بود. اونها از دری گذشتند که سردری از تیغهای تیز داشت و آستانه اون هم انباشته از سوزنهای تیز بود. در زمین اونجا هم که دائما در حال چرخیدن بود، سوزنهای نوک تیز کاشته شده بود. پادشاه دستاش رو دور گردن شاهزاده انداخت و گفت که دیگه دلیلی نداره اونا شامو با هم نخورن. شاهزاده گفت: من اصلا میلی به غذا ندارم. از صبح تا حالا در جنگل مقدار زیادی میوه خوردم و اکنون بیش از اون که گرسنه باشم خستم بنابراین ترجیح میدم به اتاق باد برم و استراحت کنم پادشاه یونان کلیت رو بهش داد و شاهزاده به اتاق باد رفت اما وقتی قفل رو باز کرد در برابرش جز چهار دیوار برهنه و سرد چیزی ندید نه خبری از آتیش بود نه خبری از قضا شاهزاده فهمید که وقتی پذیرفته شاهزاده خانوم از پیرزن جادوگر زیباتره اشتباه بزرگی مرتکب شده و دوشیزه زیبا اونو ترک کرده. شاهزاده تا صبح همونجا موند و از سرما لرزید. زخمهاش دهن باز کرد و خون زیادی از اون رفت. شب تمام نشدنی به نظر می رسید و اون احساس میکرد که هرگز قادر به ترک کردن اتاق و گرم کردن خودش در کنار آتیش نیست. همین موقع پادشاه وارد شد و پرسید که چه اتفاقی افتاده و چرا کسی نیست تا بر زخمهای اون مرحم بگذاره؟ شاهزاده زالوی از پادشاه گرفت و با اون زخمهاش رو درمان کرد. اون بعد از مدتی سلامتی خودش رو باز یافت و رفت تا از پادشاه یونان خداحافظی کنه. پادشاه یونان گفت یک دقیقه صبر کن نمیشه همینطوری و بدون گرفتن جای زبری. اون وقت رفت و یکی از دختراشو آورد و از شاهزاده پرسید که آیا دختری به زیبایی او دیده شاهزاده گفت که خیر پادشاه یونان دوباره پرسید که آیا دختری به زیبایی اون دیده و شاهزاده باز هم پاسخ داد که خیر پادشاه یونان برای بار سوم از شاهزاده پرسید که آیا دوشیزه‌ای به زیبایی دخترش دیده یا خیر شاهزاده ایرلندی این بار گفت دست از سرم بردار من زنی را دیدم که انگشت کوچیکش زیباتر از صورت دخترته پادشاه یونان گفت حالا که این حرف زدی باید مجازات بشی این مکان را ترک نمی تا اون دوشیزه زیبا را به من نشون بدی اون وقت شاهزاده ایرلندی را برد و در یکی از برچ ها زندانی کرد و دستور داد در سراسر کشور اعلام کنن که پادشاه چنین زندانی داره که در فلان روز و فلان ساعت سر از تنش جدا میشه مگر دختری که زیباتر از دختر اونه پیدا بشه روز اعدام فرا رسید و با نزدیک شدن به ساعت موعود جمعیت بیشتر و بیشتر میشد شاهزاده ایرلندی را برای اعدام آوردند و از اون پرسیدن که قبل از مرگ حرفی برای گفتن داره یا خیر شاهزاده از پادشاه یونان تقاضا کرد که به اون نیم ساعت مهلت بده اما نیم ساعت هم گذشت و هیچ کس به کمکش نیومد اون وقت یه ربع دیگه مهلت خواست وقتی یک ربع هم به پایان رسید آسمان یک پارچه تاریک شد و سه کلاق بالای سر جمعیت پیدا شدند کلاغ‌ها ابتدا دایره چرخیدند و بعد پایین آمدند و وسط جمعیت روی زمین نشستند و به محض اینکه پایشان به زمین رسید به سه زن تبدیل شدند یکی از اونا جورابش رو در آورد و پاش رو که از اون نور به اطراف میتراوید نشون داد شاهزاده ایرلندی لب به سخن گشود و گفت این همون کسیه که دنبالش بودید زنی زیباتر از دختر شما زنی که انگشت کوچیکش زیباتر از صورت دختر شماست در همین لحظه زنها دوباره به کلاق تبدیل شدند و در برابر چشمان متحیر جمعیت به هوا پریدند و رفتند شاهزاده ای ایرلندی آزاد شد و بدون اینکه حرفی بزنه یا از پادشاه یونان تشکر کنه راه خودشو گرفت و رفت. اونقدر رفت تا اینکه مه و شبنم شامگاهی اونو احاطه کرد. ماه میخواست زیر سایه برگ ریواس پنهون بشه ولی برگ ریواس از مقابل اون فرار میکرد. سگ های خشمگین در جاهایی که معمولا پارس میکن پارس میکردن و در جاهایی که پارس نمی حتی صدای نفسشون هم به گوش نمی رسید درست قبل از تاریک شدن هوا شاهزاده رشته باریکی از دود رو دید که از درره تنگ بالا می اومد به طرف اون رفت و خونه کوچیکی رو دید که سقف کاه گلی داشت وارد خونه شد و در اونجا کسی نبود جز جادوگر نیمه کور و مو سرخ که یک پاش آزاد. و پای دیگرش در بند بود جادوگر گفت خوش اومدی ای شاهزاده ایرلند چقدر خوب شد که اومدی تا بوسهای منو جمع کنی شاهزاده گفت با کمال میل اونا رو برات جمع می کنم شاهزاده در واقع اگه پای دیگر منو هم ببندی خودم اونا رو جمع می کنم شاهزاده پای جادوگر رو بست و بعد هر دو از خونه خارج شدن تا بوزها رو جمع کنند به نظر میرسید تا شعای بیست مایلی بزی نمانده بود که جمع نکرده و با خودشون نیاورده باشند. اون وقت به کمک هم اونا رو دوشیدند و بعد از پایان کار یک لیوان شیر گرم و یک لیوان شیر سرد نوشیدند. سپس بزها رو سر بریدند و به سیخ کشیدند و بر آتیش کباب کردند و خوردند. اون وقت در دو طرف آتیش نشستن و جادوگر از شاهزاده پرسید که چه خبرهایی داری؟ شاهزاده پاسخ داد هیچ خبری ندارم خودت چطور چه خبرهایی داری؟ جادوگر جواب داد خبری ندارم جز اینکه دیشب دختر پادشاه یونان و دوازده ندیمش اینجا پیش من بودن شاهزاده خانم تمام مدت برای نمیدانم کدام جنگجو که به خاطر او در حال جنگ بود گریه و شیون میکرد و هیچ کدام از ندیم قادر به آرام کردنش نبودن شاهزاده پرسید: مقصد بدی اون کجا بود؟ جادوگر گفت. اون امشب در خونه یکی از برادران من هست شاهزاده پرسید خونه برادرت کجاست؟ جادوگر گفت باید در اون جاده باریکی که به سمت جنوب شرقی میره یک روز تمام راه بری شاهزاده دیگه حرفی نزد بعد به رخت خواب رفتند و جای تعجب نیست اگه بدونید که تا صبح خواب عمیق و آرام به چشم شاهزاده نیومد صبح زود از خواب بلند شد، دست و صورتش رو شست و مسیر جنوب شرقی رو در پیش گرفت و از خدا خواست که اونو در مسیر صحیح هدایت کنه. در راه لحظه ای توقف نکرد تا اینکه شب هنگام به خونه جادوگر دوم رسید. اون شب رو مثل شب گذشته با جادوگر گذراند و همون اخبار رو درباره دختر پادشاه یونان شنید اینکه اون به خونه برادر دیگر جادوگر رفته و تا اونجا یک روز تمام راهه. صبح روز بعد به محض اینکه خورشید خرشی طولو کرد شاهزاده به راه افتاد و لحظه ای توقف نکرد تا به خانه جادوگر سوم رسید جادوگر از شاهزاده به گرمی استقبال کرد و گفت که از اومدنش خوشحاله چون میتونه در جمع کردن بوسها به اون کمک کنه همون حرفی که دو جادوگر قبلی زده بودن شاهزاده گفت با کمال میل اونها رو برا جمع می جادوگر گفت خواهش می کنم اما اگه لطف کنی و پای دیگه منو هم ببندی خودم اونا رو جمع میکنم. شاهزاده پای جادوگر رو بست درست همونطور که پای دو برادر اونو بسته بود بعد جادوگر خارج شد و در عرض نیم ساعت هرچی بز در ایرلند بود جمع کرد و آورد. اونا به کمک هم بزها رو دوشیدند و سپس یک لیوان شیر سرد و یک لیوان شیر گرم رو سر کشیدند بعد بزها رو سر بریدند به سیخ کشیدن و کباب کردند و خوردن. اون وقت در دسوی آتیش نشستند و جادوگر از شاهزاده پرسید که چه خبرهایی داره؟ شاهزاده گفت هیچ خبری ندارم، تو چطور؟ چه خبرهایی داری؟ جادوگر گفت خبری ندارم، الا اینکه دختر پادشاه یونان و دوازده ندیمش دیشب اینجا پیش من بودن. شاهزاده پرسید، شاهزاده خانوم امشب کجاست؟ جادوگر گفت که اون شب مراسم عروسی شاهزاده خانوم در خونه اموش که فاصله زیادی با اونجا نداره برگزار میشه و حتما مهمونی بزرگی با حضور تمام جنگجوها و قهرمانان سراسر عالم بر میشه. شاهزاده گفت جادوگر: آیا با من به جشن عروسی میای؟ جادوگر پاسخ داد: راستش رو بخوای نه چون اگه پادشاه منو ببینه سر از سرم جدا میکنه شاهزاده گفت؟ تو میتونی بیرون منتظر باشی و من داخل شم مطمئن باش هر خوردنی و نوشیدنی که بخوای برات میارم بنابراین حرکت کردند و یک لحظه توقف نداشتند تا به دربار برادر پادشاه یونان رسیدند شاهزاده به جادوگر گفت همینجا منتظر باش تا من برگردم اینو گفت و به طرف آشپزخونه به راه افتاد و در حالی که مثل دیوانه ها جست و خیز میکرد به کنار آتیش رفت درست در همین موقع آشپز داشت با سینی بزرگی پر از گوشت برای میهمانها خارج می شد. شاهزاده ظرف پر از گوشت را از دستش قاپید و پیش جادوگر رفت و اونو جلوش گذاشت و گفت تا بازگشت مجددش می تونه بخوره. بعد دوباره به آشپزخونه رفت و همون حقه قبلی رو تکرار کرد. ظرف دوم رو هم گرفت و بیرون اومد و اونو پیش پیش جادوگر گذاشت اما وقتی برای بار سوم میخواست وارد آشپزخونه بشه یکی از خدمتکارا اونو گرفت و سعی کرد از اونجا بیرونش کنه اما اگه تمامی خدمتکارها هم به کمکش میومدن نمیتونستن شاهزاده رو از اونجا تکون بدن خبر به میهمانها رسید که دیوانه این وارد آشپزخونه شده اونجا رو به هم ریخته و گوشتی رو که برای میهمانی تیه شده بود با خودش برده در این موقع سرپیشخدمت پایین اومد و به شاهزاده دستور داد که اونجا رو ترک کنه. شاهزاده جواب داد که تا عروس خانومو نبینم از اینجا بیرون نمیرم. ها با هم مشورت کردند و موافقت کردند که دیوانه وارد جمعشون بشه. شاهزاده میون اونها رفت و در اتاق بالا و پایین پرید. طوری که هر کس رفتار عجیب و غریب اونو میدید فکر میکرد واقعا دیوانه است. وقتی از حرکات غیرعادی اون خسته شدند، اونو پیش دوشیزه جوان بردن. شاهزاده گفت که میخواد جامی از دست اون بگیره و تا نگیره بیرون نمیره. بنابراین دختر جامی به دست اون داد. شاهزاده اونو نوشید و گفت دختر هم باید یکی از این جام ها رو برداره و بنوشه. اونها جامی رو به دستش دادن تا به دختر بده. شاهزاده حلقه ای رو که در اتاق باد از اون گرفته بود درون جام انداخت. دختر جام رو بالا برد و حلقه رو ته اون دید و در این موقع فهمید کسی که در برابرش ایستاده شاهزاده است. بعد کشیش رو آوردند و دختر رو به عقد شاهزاده ایرلندی در آوردند. جشن عروسی اونها هفت روز و هفت شب ادامه داشت. صبح روز هشتم شاهزاده از همسرش خواست تا برای قایقرانی روی دریا اونو همراهی کنه. اونها بر کرجی زیبایی نشستند و هنوز دور نشده بودند که جادوگر سوار بر کرجی خودش اومد و گفت ای شاهزاده ایرلندی بیا با کرجی های من مسابقه بدیم. شاهزاده جواب داد مسئله این نیست مسابقه آغاز شد و چیزی نگذشت که کرجی جادوگر در مقابل اونها به اون طرف رسید جادوگر صبر کرد تا اونها برسند و بعد گفت شاهزاده در مسابقه شکست خوردی شاهزاده جواب داد بار کرجی من بیشتر از تو بود و الا هرگز نمیتونستی منو شکست بدی جادوگر گفت بسیار خوب بگذار همسرت سوار کرجی من بشه تا دوباره مسابقه بدیم همسر شاهزاده گفت کاری به کار جادوگر نداشته باش اگه منو به قایق اون بفرستی بلایی به سرت میاد که رنج و عذابهای قبلی در برابر اون هیچه شاهزاده گفت نگران نباش اگه وزن تو از کرجی من کم بشه به راحتی شکستش میدم شاهزاده خانم گفت تو برنده نمیشی و تمام سعیش رو کرد تا شاهزاده رو از فرستادن اون به کرجی جادوگر منصرف کنه اما فایده نداشت شاهزاده باور نداشت که نمیتونه ببره و بالاخره هم همسرش رو کرد که به کرجی جادوگر بره. مسابقه شروع شد و هر دو با تمام قوا پارو زدن اما طولی نکشید که جادوگر و کرجیش از نظر ناپدید شدن. شاهزاده نمیدونست که جادوگر به شرق رفته یا غرب، به شمال رفته یا جنوب، و یا اینکه دریا دهن باز کرده و اونو رو بلعیده. اما عاقبت فهمید که جادوگر چه قصدی داشته و چه حقی به اون زده. این تصمیم گرفت که دیگه وقتش رو برای یافتن اون هدر نده، کرجیش رو چرخوند، با آخرین سرعت به بندر برگشت و روی ساحل پرید. شاهزاده بعد جور به درد سر افتاده بود، چون به هیچ وجه نمیدونست که همسرش در اون لحظه در کجای این جهان پهناوره، حتی نمیتونست به دربار پدرزنش برگرده، چون اگه دست پادشاه به اون میرسید، سرستنش جدا میکرد. اصلا نمیدونست چه خاکی به سرش بریزه اما بالاخره مسیر جنوب شرقی رو در پیش گرفت و از خداون خواست تا اونو در مسیر درست هدایت کنه. رفت و رفت و رفت تا شب شد و در حالی که سیاهی همه جا رو فرا میگرفت قصری رو دید و وارد اون شد. اونجا همسرش رو دید و به طرفش رفت اما زن گفت که نباید به اون نزدیک بشه وگر نه بازگرد شاهزاده پرسید که چه کسی مانع رسیدن اونها به همه زن گفت که اونجا خونه جادوگره و اون هر چی زودتر بره بهتره چون اگه جادوگر برگرده هر دوی اونها رو میکشه شاهزاده گفت تا تو رو با خودم نبرم هرگز پام رو بیرون نمیذارم و حاضرم زندگیم رو همسر این کار بدم زن گفت کشتن جادوگر سخته چون اون دوتا جون داره وقتی خونه رو ترک میکنه برای اطمینان یکی از اونها رو درون یه مرغ مرغ میذاره که وسط اون درختی که مقابل در رویده، اما بدون که در طبقه بالا زیر تخت تبر قدیمی و زنگزده ای هست که فقط با اون تبر میشه این درخت رو قطع کرد با اولین ضربه باید درخت رو بندازی چون به محض وارد شدن ضربه درخت چنان فریادی میکشه که جادوگر هر کجای دنیا هم باشه اونو میشنوه در حال حاضر جادوگر در دنیای شرقه. وقتی فریاد درخت رو بشنوه در یک چشم به هم زدن در برابرت ظاهر میشه و قصد جونتو میکنه در اون وقت اگه تخم مرغ رو برای پرتاب کردن به طرف او و زدن به نقطه مشخصی در زیر سینه چپش آماده نکرده باشی کارت تمومه اگه موفق باشی تخم مرغ رو به جای صحیح بزنی جادوگر می و ما آزاد میشیم. شاهزاده گفت تمام سعیم رو می و دوان دوان به طبقه بالا و سراغ تبر رفت بعد به کنار درخت رفت و ضربه محکمی به اون زد. به محض فرود اومدن ضربه جیغ بلندی از درخت بلند شد و به زمین افتاد. شاهزاده بلافاصله تقم مرغی رو که درون درخت بود برداشت و هنوز اونو درست به دست نگرفته بود که جادوگر پشت سرش ظاهر شد و با شمشیر قصد جونشو کرد. اما شاهزاده کم نیاورد و قبل از اینکه جادوگر فرصت زدن ضربه را پیدا کنه تخم مرغ رو به محل صحیح در زیر سینه چپ او کوبید و جادوگر نقش زمین شد و جان سپرد در این موقع همسر شاهزاده به سمتش دوید و شوهرش را غرق اشک کرد بعد سر رو با پارچه‌های ابریشمی و حریر خوش کرد دیگه موندن جایز نبود و اونا آماده حرکت شدند شاهزاده و همسرش تمام دارایی جادوگر را نقره، طلا و تمام چیزهای با ارزشی که اون از سر, و سر دنیا جمع کرده بود برداشتن و راه ایرلند سرزمین پدر شاهزاده رو در پیش گرفتند در اونجا از آنها به گرمی استقبال کردند و جشن ازدواجشان هفت روز و هفت شب ادامه داشت و از آن پس خودشون و فرزندانشون سال‌های سال به خوشی و شادمانی در ایرلند زندگی کردند. پایان سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه‌ها، ها طبیعت های زیبا و ناب،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 ادساین مهران دوستی